ببخشید، شما کلاس فارسی داشتید ؟ بله، من امروز دو کلاس فارسی داشتم. کلاس اول تمام شد. در این کلاس چه چیزی یاد می گیرید؟ این کلاس دستور زبان فارسی بود. ساعت سه کلاس شعر نو دارم. در این کلاس چند نفر هستید؟ فکر می‌کنم دوازده نفر هستیم. دانشوهای زبان فارسی اهل کجا هستند؟ آنها آلمانی، ترک، چینی، اسپانیایی، فرانسوی و انگلیسی هستند. در این کلاس‌ها دانشجوها با ادبیات فارسی هم آشنا می‌شوند؟ بله. البته اگر به ادبیات فارسی علاقمند باشند. پس شما میتوانید توانید را انتخاب کنید. بله، بعضی فارسی خوب میدانند. آنها میتوانند به کلاس های ادبیات بروند و با سعدی، حافظ، خیام و مولانا جلال الدین آشنا شوند. برای کسانی که فارسی نمیدانند چطور آنها می توانند به کلاس های گفتگو دستور زبان فارسی و خواندن بروند